دوستان خوبم به کلاس دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. این کلاس کلاس مقدماتی بررسی کل کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه است. ضمن بررسی هامون 39 کتاب عهد قدیم رو به پایان بردیم و اخیرن بررسی انجیل متا رو تموم کردیم و در این جلسه بررسی انجیل لوقا رو شروع می کنیم خیلی خوشحالیم که تصمیم گرفتی در این دوره با ما همراه باشید دایه امروز اینه که این پیام برکت بزرگی برای شما به همراه داشته باشه ما حقایق شگفت انگیز زیادی رو از زندگی و خدمات عیسی مسیح از زبان دکتر لوقا خواهیم شنید این شما و این معلممون روح خداوند بر من است زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رأسگاری و کوران را به بینایی معزه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند معزه کنم دعایی که از انجیل لوقا الان خوندیم به عنوان آیات کلیدی انجیل لوقا مطرح شدن ما انجیل مطا را نسبتاً عمیق بررسی کردیم به این ترتیب بعضی از چیزهایی که در انجیل همسان متا مرگوس و لوقا اتفاق افتادند رو بررسی کردیم. ضمن بررسی انجیل لوقا چیزهایی رو که در انجیل متا بررسی کردیم تکرار نخواهیم کرد. حالا می خواهیم با هم انجیل لوقا رو بررسی کنیم و به بعضی تأکیدهای خاص در لوقا نگاهی بندازیم. بعد از اون چیزهایی رو که در انجیل لوقا هست و در متا و یا در سایر انجیل همسان وجود نداره با همدیگه بررسی خواهیم کرد. مرقس و لوقا دو نویسنده انجیل هستند که جزء دوازده شاگرد نبودند. مرقس و لغا رسول نبودند. در واقع لوقا حتی یهودی هم نبود. لوقا یونانی بود و انجیل او آشکارا خطاب به کسانی که یونانی هستند. او انجیلش رو خطاب به مردی به نام توفیلوس می نویسه. کتاب اعمال رو هم لوقا نوشته. وقتی او کتاب اعمال رو می نویسه باز هم خطاب به همون شخص می نویسه در ابتدای کتابش می نویسه من کتاب نخست خود را ای تیوفیلوس عزیز در باب همه اموری تعلیف کردم که عیسی به تعلیم دادن و عمل نمودنشان آغاز کرد تا روزی که به واسطه ی روح القدس دستورهایی به رسولان برگزیده خود داد و سپس بالا برده شد او پس از رنج کشیدن خیشتن را بر آنان ظاهر ساخت و با دلایل بسیار ثابت کرد که زنده شده. پس به مدت چهل روز بر آنان ظاهر میشد و درباره پادشاهی خدا با آنان صحبت میکرد. در نوشتههایش به توفیلوس و کتابی که خطاب به او نوشته او ترهای خلاصه خلاصهای را به ما میده که ما بهش انجیل لوقا میگیم. هدف لوقا این بود که به ما داستان منظمی از کارهایی که عیسی شروع به انجامش کرد و تعلیم داد بده که به معموریت بزرگ او قبل از سعود و آسمان ختم میشه. برای من جالبه که اگر لغا تا این حد علاقمند به مردی به نام تئوفیلس نبود که هر دو کتاب رو خطاب به او بنویسه امروز ما هیچ کدوم از کتاب های و اعمال رسولان رو که هر دو کتاب بسیار مهمی در کتاب مقدس هستند نداشتیم. لغ میخواست اوفلیلوس در مورد چیزهایی که او تعلیم داده یقین حاصل کنه. او قصد داشت که داستان منظمی از این چیزها را مطرح کنه و بسیاری از شاهدان عینی رو معرفی کنه تا اینکه این مرد بتونه بفهمه که چیزهایی که در مورد عیسی مطرح شده حقیقت دارند لوقا کتاب اعمال و انجیل لوقا رو خطاب به این مرد نوشته ما اطلاعات زیادی از توفیلوس نداریم جز اینکه او یونانی بود معنی کلمه توفیلوس یعنی عاشق خدا از اینجا میفهمیم که این مرد خدا رو دوست داشته و حتماً لوقا به شدت به این مرد علاقمند بوده چون که هر دوی این کتاب ها رو خطاب به او نوشته. برخی از محققین عقیده دارند که توفیلوس وجود خارجی نداشته و لوقا این کتاب ها رو خطاب به تمامی عاشقان خدا نوشته. من هم آشکارا با این محققین هم عقیده هستم. خیلیا هستند که بر این عقیده اند که این مرد که عاشق خدا بود، شخصی حقیقی و دوست لغا بوده. لغا پزشک و شخصی تحصیل کرده بود. او در زمان خودش به عنوان یک دانشمند شناخته شده بود. او واجه های پزشکی به کار می‌برد و به زبان یونانی بیش از هر کس دیگری از جمله پولس رسول در عهد جدید تسلط داشته. وقتی از کسی نامه‌ای دریافت می‌کنید، شما میتونید از متن نامه او بفهمید که آیا او تحصیل کرده هست یا نه. اگر شما یک محقق یونانی باشید، می‌توانید به این متون یونانی نگاه کنید و تفاوت بین نوشته‌های پولس که یکی از برجسته ترین افراد زمان خودش بود و پتروس که سواد خواندن و نوشتن نداشت و از یک کاتب برای نوشتن استفاده می کرد رو ببینید. همینطور میتونید بگید که لغا شخصی تحصیل کرده بوده چون گرامر زبان یونانی او بسیار کامل بوده و در وقایع تاریخی بسیار دقیق بوده. سالها پیش مردی تصمیم گرفت سفری طولانی بکنه که ثابت کنه انجیل اعتبار تاریخی نداره. او تصمیم گرفت که بعضی از سفرهای خدمتی پولس را که در کتاب اعمال رسولان گزارش شده پیگیری کنه و ثابت کنه که داستانهای انجیل و لوقا دقت و صحت تاریخی ندارن. در نیمه راه سفر او تبدیل شد و سفرش را با نتیجه کاملا متزاد به پایان برد و به این نتیجه رسید که وقایه گزارش شده توسط لوقا کاملا است. انجیل لوقا حاوی 20 موجزه ایسا است. شش تا از این موجزات فقط در انجیل لوقا گزارش شده. انجیل لوقا بیست و سه مسل رو گزارش کرده که هجده تا از اونها منحصرا در انجیل لغا اومده. اگر انجیل لغا نبود، ما های پسر گمشده سامری نیکو، مرد ثروتمند و ایلازر و دعای مرد گناهکار رو که بخشی از مسل فریسی و باجگیر هست نداشتیم. داستان زکریا رو نداشتیم و هیچ کدوم از این متون رو که مورد علاقه خیلی از مردم هست در کتاب مقدس نمیتونستیم ببینی متا تا انجیل مورد علاقه بسیاری از مردم هست چون متا تا حاوی موعظه سر کوه است و عیسی را به عنوان پادشاه معرفی میکنه انجیل متا پادشاهی خدا را برای ما به تصویر میکشه انجیل یوحنا هم مورد علاقه بسیاری از مردم هست چون خیلی از ایمانداران با خواندن انجیل یوحنا تبدیل شدند بعضی ها انجیل مرقس رو بیشتر دوست دارن چون انجیل مرقس خلاصه و مختصره و بر اعمال عیسی تکیه داره اما انجیل لغا بیشتر از این نظر مورد علاقه مردم هست که مسیح رو به روش متفاوتی به ما معرفی میکنه. متا بر این واقعیت تاکید میکنه که عیسی پادشاهه مرقس به نقش خدمتی مسیح تاکید میکنه یوحنا بر این واقعیت که او خدا بوده تکیه داره اما لوقا انسان بودن عیسی رو مورد تاکید قرار میده واقعیت اینه که عیسی خودش را با انسانیت ما برابر میدونه. لوقا از نیازهای بزرگ اجتماعی انسانها آگاهی داشت و عیسی رو به ما به عنوان کسی نشون میده که از هوشیاری اجتماعی عظیمی برخوردار بوده. در سراسر انجیل لوقا، انسان بودن مسیح رو به وضوح می‌بینید. این لوقا هست که به ما میگه عیسی یک روز رو در عریها به سر برد و موجب عصبانیت همه شد. چون که او یک روز رو با مرد قدکوتاهی به نام زکریا سپری کرد که مردم از او نفرت داشتند لوقا نوشتش رو با این عنوان شروع میکنه. پسر انسان آمد تا گمشدگان رو پیدا کنه و نجات بده بسیاری از محققین بر این باورند که این جمله آیه کلیدی انجیل لوقا هست. این لوقا که به ما میگه مارتا ناراحت بود چون مریم در کارهای خانه به او کمک نمیکرد. لغا معمولاً بر جزئیات مربوط به مسائل انسانی تکیه میکنه. لغا مسیح رو در مواجهش با پتروس به عنوان مردی به تصویر میکشه که حتی قادر به گرفتن ماهی نبود. عیسی پتروس رو تعلیم داد و او رو تبدیل به سیاد انسان‌ها کرد که یکی از بزرگترین سیاد جانها در تمام طول تاریخ شد. این لغاست که به ما میگه وقتی پتروس برای سومین بار مسیح رو انکار کرد و بانگ خروس برخاست نگاه عیسی یک لحظه به پتروس افتاد بعد پتروس بیرون رفت و در تاریکی بیرون به تلخی گریست. لوقا همچنین بر خدمت شفای عیسی تاکید میکنه چون خود لوقا یک پزشک بود به همین دلیل لوقا تنها نویسنده انجیلی هست که به ما تمثیل زیبای سامری نیکو رو میده که در راه با مردی زخمی مواجه میشه که به حال مرگ رها شده بود راهزنان به اون مرد حمله کرده بودند و به شدت او را زخمی کرده بودند و سامری نیکو میدونست که با اون مرد باید چیکار بکنه؟ او زخم هاش رو میبنده و روغن و شراب به زخم او می میماله و مرد درمانده رو به کاروانسرایی میبره و هزینه های درمان او رو می پردازه. اگر این مرد سومین انجیل رو ننوشته بود ما از این داستان بی اطلاع میمونیم. چون لغاپزشک بود او مسیح رو به عنوان کسی به تصویر میکشه که خدمت خودش رو با چیزی شروع میکنه که محققین به اون بیانیه ناصره یا بیانیه ی مسیح میگن. بسیاری از رهبران بزرگ که میخوان تأثیر عمیقی بر دنیا بذارند، بیانیه یساده میکنند. مثلا هیتلر بیانیه ای داشت. اگر قبل از اینکه هیتلر به مفاد بیانیه عمل بکنه، مردم اون بیانیه رو جدی گرفته بودند، بیش از 75 میلیون انسان نمیمودند. روزی مردی به نام کارل مارکس با شخصی به نام فردریش انگلز ملاقات کرد. مارکس یک متخصص علوم سیاسی بود و انگلز شفقت زیادی نسبت به مردم داشت. اونها نقط نظراتشون رو توانایی‌ها و نبوغشون رو با همدیگه در میون گذاشتن و هفته‌ها با همدیگه ملاقات ملاقات‌های متعددی داشتند تا به نقطه نظر مشترکی برسند. در نتیجه اونها بیانیه مشترکی صادر کردند که به منیفست کمونیست یا بیانیه کمونیست معروفه. تا مدت‌های مدیدی فروش بیانیه کمونیست‌ها از انجیل پیشی گرفت. اون یکی از پرتیراشترین کتاب‌های دنیا بود. مارکس و انگلز در بیانیه مشترکشون چیزی رو تدوین کردند که باید توسط هر زن و مرد کمونیستی به اون عمل میشد. تا سالها بعد از اینکه مانیفست نوشته شد، کسی به مفاد این بیانیه عمل نمیکرد، تا اینکه مردی به نام ولادیمیر لنین به عرصه اومد. لنین بیانیه رو خوند و به دنیا و نیازهای اون نگاه کرد. بعد لنین لایحه ای نوشت یک اعلامیه کوچک عنوان اون اعلامیه این بود چه باید کرد خلاصه اون اعلامیه این بود که اگر شما به مانیفست معتقد هستید و دنبال راه حلی برای نیازهاتون هستید باید به مفاد این مانیفست عمل کنید اگر چه به نظر میرسه كه که کمونیسم در اتحاد شوروی پیشین شکست خورده اما میلیاردها انسان در چین وجود دارند که هنوز تحت کنترل رهبران موافق لنین هستند همونطور طور که لقا میده وقتی عیسی خدمتش رو شروع میکنه او هم خدمتش رو با بیانیه شروع میکنه در روز سبت عیسی به معبد شهر زادگاهش میره که محل بسیار مشکلی برای انجام چنین کاری بود او اونجا تومار اشعیا رو درخواست میکنه و تومار اشعیا رو از باب 63 باز میکنه که تقریبا اواخر تومار هست و این کلمات رو میخونه روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مسخ کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند را اعلام نمایم اگر با اشعیا 61 آشنا باشید میدونید که عیسی در وسط آیه 2 توقف میکنه. در واقع آیه را تموم نمیکنه آیه اینطور ادامه پیدا میکنه و میگه و از یوم انتقام خدای ما ندان مایم ایسا نیومده که اون قسمت از آیه رو تحقق ببخشه بعد وقتی که تو ما رو به دست خادم کنیسه میده او میگه امروز این نوشته هنگامی که به دانگوش فرامی دادید جامعه عمل پوشید اون سخنان اشعیا بیانیه مسیح بود این بیانیه شرحی از خدمت عیسی رو به ما نشون میده ماموریت او دقیقا این بود روح خداوند برو بود وقتی که اشاره به روح القدس رو میبینید ملاحظه کنید که چه حرف اضافهی در ارتباط با روح القدس به کار رفته. گاهی تأکید بر کار روح القدس در ما هست، روح القدس یا حضور الهی به همراه ما توصیف شده، روح القدس درون ما توصیف شده، اما همینطور روح القدس بر ما هم توصیف شده. این همون مسه روح القدس هست. در کتاب اعمال بیشتر از حرف اضافه بر در رابطه با روح القدس استفاده شده. اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در او شلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود رسولان به رستاخیز آخیز خداوند با قدرتی عظیم شهادت میدادند و خدا برکت فراوانی به آنها عطا می‌فرمود این همون مسنی رو بخش روح القدس بر ماست که ما را برای خدمت آماده می‌کنه روح القدس همیشه با خدمت همراه بوده دلیل وجود روحالقدس در ما با میوه های روح ثابت میشه دلیلی که روح القدس رو بر ما اثبات میکنه مسح ما برای خدمت هست که به عنوان عطایای روح توصیف شده در کتاب مقدس حدودن به 21 اتی اشاره شده در همون ابتدای خدمت عیسی او میگه روح خداوند بر من است من مسی دارم که منو تقویت میکنه یعنی روح القدس بر من هست. در باب چهارم لغا ملاحظه کنید که لغا چطور در رابطه با عیسی به روح اشاره میکنه لغا میگه عیسی در حالی که پر از روح بود بنا به گفته لغا، روح عیسی رو هدایت کرد عیسی با قدرت روح از بیابان بازگشت و وسوسه نشد عیسی با اقتدار و قوت صحبت میکرد چون مس روح بر او بود و موعظه های او با قوت بود بعد این رو در چهار هجده میبینیم که روح خداوند بر من است و مرا مس کرده حالا روح القدس عیسی رو با هدفی مس کرده بود معموریت او این بود که شفا بده موعظه کنه و مردم را آزاد کنه روح خداوند بر من است و مرا مس کرده تا انجیل را برای فقیران موعظه کنم عیسی میگه که پیام او انجیل یا خبر خوش هست. و خطاب به کسانی که از اونها به عنوان فقیران یاد شده اما اینجا منظور عیسی فقر مادی نیست این مردم از این نظر فقیرند که به لحاظ روحانی خالی و کور هستند این چیزی بود که بیش از هر چیز دیگری موجب دلسوزی عیسی نسبت به این مردم میشد. اونها دست چپشون رو از دست راستشون تشخیص نمی دادن. اونها مانند گوسفندانی بیشبان بودند و خودشون هم نمیدونستند. این کوری روحانی هست. ماموریت عیسی این بود که انجیل رو طوری موعظه کنه تا کوران بینا بشن. ببین معنی که خدمت تعلیم عیسی به منظور بینا کردن کوران بود تا بتونن دست چپشون رو را از راستشون تشخیص بدن تا مردم بدونن که چی کار باید بکنن. پیام عیسی همینطور خطاب به کسانی هست که اسیر هستن، خطاب به کسانی که آزاد نیستن، خیلی از مردم آزاد نیستن. اگر راستشو بخواید، باید بگم اکثریت مردم نمی دونن چی کار باید بکنن. مردم کاری رو می کنند که لازمه بکنن. مردم کاری رو می کنند که باید بکنن. مردم کاری رو می کنند که به سوی اون کشیده میشن. مردم کاری رو میکنند که به اون وادار میشن کسانی که با عادت یا با امیال و شهواتشون به انجام کاری وادار میشن آزاد نیستن عیسی رو به حال خودشون رها نمیکنه عیسی متعهد بود که کسانی که اسیرند و یا کسانی که او به اونها برده گفته رو آزاد کنه پیام او برای کوران موعظه شد و بینایی اونها رو به دنبال داشت وقتی او برای کسانی موعظه کرد که اسیر بودند نتیجه این بود که اونها آزاد شدند. پیام عیسی آزادی اسرا بود. آیا شما به لحاظ روحانی کور هستید و آزاد نیستید؟ به جهت اینکه چی چیکار باید بکنید، بلکه کارهایی رو می کنید که به اون وادار میشید یا به طرف اون کشیده میشید، آیا زندگی شما را شکسته و کوبیده شده رها کرده؟ پس به عنوان خادم عیسی مسیح خوشحالم که به اطلاع شما برسونم که عیسی مسیح واقعا برای انسانهایی مثل شما به این دنیا آمد او نه تنها آمد بلکه امروز هم زندگی می‌کنه و مایل که با دادن بینایی روحانی و آزادی از اصارت هاتون و شفای شکستگی هاتون این رو به شما ثابت کنه به او اعتماد کنید به او باور کنید او تمام این کارها رو برای شما انجام خواهد داد چون او به ما میگه که خدمت او به همین دلیل بود زندگی بسیار سخته یک روانشناس به نام اسکات پک کتابی نوشته به نام جاده متروک اولین عبارت این کتاب اینه زندگی سخت هست. وقتی مردم سه کلمه اول اون رو می به خوندن ادامه میدن چون این عبارت مفهومی حقیقیه که همه لمسش کردن در اولین فصل از این کتاب دکتر پک میگه در این دوره ما فکر می‌کنیم که مشکلات بیش از اندازه طاقت فرسا هستند یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که باور نمی کنیم باید مشکل داشته باشیم ما فکر میکنیم مشکل داشتن چیز غیرعادی هست. اگر شما مشکلات رو غیرعادی میبینید زندگی رو درک نمی‌کنید. زندگی سخته. تفاوت بین مردان و پسران اینه که چطور از عهده مشکلات خودشون برمیان. چطور با مشکلات خودتون برخورد میکنید. زندگی سخته. و چون زندگی سخته، بسیاری رو شکسته و کوفته بر جا می گذاره. تحت فشارها و بارها و مشکلات زندگی اونها تلو تلو میخورند و میلیغزن و بعضی ها در هم میریزن. در پایان سر سرکو، عیسی دو خانه ای رو مثال میزنه که با طوفان‌ها ها مواجه میشن. ایسا گفته طوفان بر هر دو خانه فشار میاره. این مثال، مثالی واقع گرایانه هست. برخی ها در مقابل طوفان طاقت نمیارن. طوفان‌های زندگی بعضی ها رو شکسته و متلاشی بر جا میزاره. و عیسی گفته مأموریت من اینه که شکستگان و کوبیدگان رو شفا بدم. میخوام خبر خوشم رو برای کسانی که شکسته و کوبیده هستن موعظه کنم تا شفا پیدا کنم طبق بیانیه عیسی ایسا او این هست عیسی پیامی خطاب به فقیران به لحاظ روحانی داره خطاب به اسیران، شکستگان و کوبیدگان عیسی وعده داده وقتی من بشارتم رو به این فقیران روحانی بدم نتیجهش فوق مثبت مثبت خواهد بود کوران دید، اسیران آزاد خواهند شد و شکستگان و کوبیدگان شفا خواهند یافت قبلا گفتیم که عیسی مسیح مردی بود که مأموریتی داشت و بیانیه ای سادر کرد وقتی انجیل لغا رو بررسی می کنیم بیانیه ایسا کلید دستیابی ما به سومین انجیل خواهد بود من معتقدم که چیزی که محققین به اون بیانیه ناصره می گن کلیدی برای انجیل لغا و خدمات مسیح از دیدگاه لغا هست در لغا باب پنج واقعی هست که در اون عیسی بیانیهاش رو در حین مأموریتش ثابت میکنه عیسی یک جزامی رو در اسرائیل جنوبی شفا میده بعد به شمال و به جلیل سفر میکنه شفای جزامی توجه زیادی رو به خود جلب میکنه و عیسی به این جزامی گفته بود که درباره شفای خودش با کسی صحبت نکنه این جالبه وقتی به این واقعیت فکر میکنیم که عیسی به ما گفته که درباره انجیل با همه صحبت کنیم و ما به کسی نمیگیم اما عیسی به این جزامی گفته بود که به هیچ کس چیزی نگه و او به همه گفته بود. آشکارا خیلی ها از اسرائیل جنوبی به اسرائیل شمالی و به جلیل سفر کردند. رهبران مذهبی، علمای شریعت، فریسیان و همه از جنوب یعنی اورشلیم به جلیل در شمال سفر کردند تا در مورد شفای این جزامی تحقیق کنند. عیسی در کفرناهم خانه ای داشت که در آن اقامت می کرد. شهری بود که او برای سکونت در شمال اسرائیل انتخاب کرده بود به سرعت همه جا شایع شد که او در این خانه هست. خانه و عراضی اطراف خانه مملو از جمعیت شد عیسی در خانه در حال تعلیم موعظه و شفا دادن بود چهار مرد اونجا بودند که دوست افلیجشون رو بر روی بستر آورده بودند این چهار مرد میدونستند که تنها امیدی که برای دوست فلجشون وجود داره عیسی هست. اونها سعی کردند او رو نزد ایسا برسونند، اما وقتی به در خانه رسیدن و انبوه جمعیت رو دیدن نتونستن وارد خانه بشن اونا در خانه ایسا مشورت کردن و در نتیجه تصمیمی گرفتن چون نمیتونستند از در وارد بشن تصمیم گرفتند از پنجره وارد بشن این راهیه که معمولا مردم امروزه انجام میدن وقتی از در نمیتونن وارد بشن از پنجره وارد میشن اینطور نیست و اما بعد متوجه شدن که از پنجره هم نمیتونن وارد بشن بعد از اون تصمیم گرفتن سقف خانه رو بردارن و او را از سقف به پایین بفرستند. حتی خانه های امروز در سرزمین مقدس از بیرون ساختمان پلکانی داره که به پشت بام منتهی میشه. اونا عملاً سقف خانه رو شکافتن فکرش رو بکنید. عیسی در حال تعلیم هست که ناگهان گرد و خاک از بالا میریزه و شکافی در سقف باز میشه و بعد مردی بر روی دوشک به پایین فرستاده میشه و در مقابل عیسی قرار میگیره. نظر بر اینه که عیسی هرگز صحبتش رو قطع نمیکرد. بسیاری از واعظین و معلم ها این رو به عنوان یک مسئله ای میکنند که صحبت اونها رو قطع میکنه. اما می بینیم که ایسا این پیش آمد رو به عنوان مزاحمت تلقی نمیکنه بلکه اون رو به عنوان یک فرصت می بینه. او توجهش را از جلسه میگیره و تماماً بر اون مردی که روی بستر هست تمرکز میکنه. وقتی عیسی ایمان اونها رو میبیه، به مرد روی بستر میگه گناهانت بخشیده شد و وقتی عیسی این حرف رو میزنه علمای شریعت که از اورشلیم آمده بودن ناراحت میشن اونا با خودشون میگن او چی فکر میکنه او فکر میکنه کیه چه کسی جز خدا میتونه گناهان انسان رو ببخشه عیسی بر این واقعیت شک نداره و بر سر این بحث نمیکنه عیسی با مردان مذهبی موافق بود که فقط خدا میتونه گناهان رو ببخشه و به این دلیل از این فرصت استفاده میکنه و دلیل خدا بودن خودش رو آشکار میکنه و اینکه او قدرت داره بیانیش رو به مرحله عمل در بیاره ایسا میدونست که علمای دینی چی فکر میکنن اونا میگفتن تو به این مرد گفتی که گناهان تا شد خب او فقط وعده تو رو داره چطور میتونی ثابت کنی که گناهانش بخشیده شده؟ عیسی میدونست که اونا چی فکر میکنن پس به اونها میگه بذاری دزتون سوالی بکنم کدام یک اینکه به مردی بگی گناهانت آمرزیده شد یا اینکه به او بگی برخیز و برو مطمئنم که سکوت مطلقی در اون لحظه در تمام اون اتاق حکم فرما شده و بعد از اون عیسی میگه اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد به اون مرد مفلوج میگه به تو میگویم بلند شو تا شک خود را بردار و به خانه برو فورا پیش چشم اونها روی پایهای خود برخاست توشکی را که روی آن خوابیده بود برداشت و خدا را همدگویان به خانه رفت. این موجزهای بزرگ چیزی که من بهش شفای استراتژیک عیسی میگم. هدف از این شفای این بود که تمامی سایه های شک و ابهامی که در مورد اختیار عیسی برای بخشش گناهم بر روی زمین بود، از بین بره. عیسی در بیانیش به کسانی که در اسارت گناه در این دنیا هستند، اعلام کرد که عیسی به آنها خدمت خواهد کرد تا آزاد بشن. کسانی که دائما اسیر حس تقصیر بودند عیسی آمد که به مردم گناهکار خدمت کنه این بیماری که اون مرد رو زمین گیر کرده بود شاید بیماری بود که امروزه بهش روانتنی میگی میگیم های روحی که نشانه های اون در تن و بدن شخص دیده میشه به این بیماری ها بیماری های ناشی از روح و روان هم میگن سالها پیش پزشکان میگفتند که درصد قابل توجهی از کسانی که برای مداوا مراجعه میکنند هیچ ناراحتی در بدنشون نداره بلکه مشکل اصلی در روان اونها هست اما امروزه پزشکان میگن که بیش از 80 درصد کسانی که برای درمان به پزشکان مراجعه میکنن علائم بالینی هیچ بیماری رو در بدنشون ندارن بلکه بیماری اونها تماما ناشی از روح اونهاست علائم شاید در بدن باشه و خیلی هم واقعی به نظر بیاد اما وقتی که نتیجه تمامی آزمایشات رو میبینید متوجه میشید که منبع و دلیل بیماری اونها مسائل روحی و روانیه احساس گناه یکی از عوامل اصلی بیماریهای روان تنی است وقتی عیسی به اون مرد جوان گفت که گناهانت بخشیده شد مشکل گناه او حل شد و بعد او توانست راه بره اگر این حقیقت داشته باشه که بسیاری از این اسیران که عیسی می‌خواست اونها رو شفا بده در نتیجه احساس گناه اسیر شده بودند پس راه حل این همونطور که در این انجیل می‌بینیم این هست. گناهان تو بخشیده شد. چون عیسی با عنوان بره خدا به این دنیا آمد تا گناه را از این جهان برداره او وقتی گناهان و شرم‌های اونها رو رفع کرد، مشکل گناه رو حل کرد و اسیران را آزاد کرد. در باب پنجم انجیل لوقا، عیسی بیانیه خودش رو ثابت میکنه وقتی انجیل لوقا رو می‌خونید، ملاحظه می‌کنید که عیسی مرتباً در حال انجام اعلامیه خودش هست. عیسی بیانیه‌اش رو در باب چهار اعلام کرد و در باب پنج ثابت کرد و این بیانیه رو در سرتاسر سر انجیل لوقا موعظه کرد خدمت تعلیم عیسی را ملاحظه کنید او به کوران در انجیل لوقا بینایی میده خدمت تعلیم عیسی در مباحثات او در مسائل او در گفتگوهای او مذاکرات او در ها و اعمال و زندگی او به چشم میخوره. عیسی هر چیزی که هست هر کاری که میکنه و هر چیزی که میگه بخشی از خدمت تعلیم او هست که منجر به بینایی کوران میشه. ملاحظه کنید که او چطور از ایران رو در انجیل لغا آزاد میکنه. مثال های زیبایی از خدمت تعلیم عیسی هست اما من مخصوصا اونی رو که در باب هشت عیسی به سرزمین جدریان میره خیلی دوست دارم. عیسی با شخصی دیو زده که کاملا مشخص بود تحت تسلط دیوهاس رو روبرو میشه. ما نمیدونیم عیسی برای این مرد چیکار کرد. کسانی که امروزه با بیماران روانی کار میکنند خیلی دوست دارند بدونن که عیسی چی کار کرد. اون مرد لباس نمیپوشید. او خیلی شبیه کسانی بود که در بیمارستانهای روانی قبل از استفاده از مسکن هم میبینیم. امروزه بیماران روانی درمانده تحت تأثیر داروهای روانگردان قوی قرار میگیرند. قبل از کشف داروهای مسکن با بیماران روانی در بیمارستانها چی میکردند؟ اونا درست مثل این مرد زده بودند که در باب هشت لغا شرط داده شده بعد از اینکه عیسی مدتی با او وقت گذاشت این مرد رو میبینیم که کنار پاهای عیسی نشسته لباس پوشیده و حواسش کاملا جمع هست. اگر شما بیمار روانی در خانوادتون داشته باشید یا شخصی دیو زده مطمئن که حاضرید هر چیزی بدید تا بدونید عیسی چکار کرد که تماماً این مرد رو تبدیل کرد داستان شفای مرد دیو در جدریان مثال زیبایی از آزادی اسیران از توسط عیسی هست. همینطور داستان زنی رو که در باب 13 اومده که به مدت هیجده سال پشتش خمیده بود خیلی دوست دارم. در روز سبت عیسی او را شفا داد. رهبران مذهبی از عیسی انتقاد کردند چون او در روز سبت شفا داده بود. عیسی فریاد زد ریاکاران. آیا کسی در میان شما پیدا می شود که در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخور باز نکند؟ و برای آب دادن بیرون نبرد پس چه عیب دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است و هجده سال گرفتار شیطان بود در روز سبت از این بندها آزاد شود این هم یکی از نشانه‌های عیسی برای اثبات بیانیه خودش در مورد آزادی اسیران از بود عیسی هیچ فرصتی را از دست نمیده که شخصی اسیر را آزاد نکرده پشت سر بذاره مردم دنیا دو دسته هستند کسانی که آزادند و کسانی که آزاد نیستن من افراد زیادی رو از هر دو گروه دیدم موقعیت کسانی که آزاد نیستن بسیار قمنگیزه به اعتقاد من چیزی که لغا از بیانیه مسیح به ما میگه اینه که مسیح نسبت به کسانی که آزاد نبودن ترهم داشت او نگران کسانی بود که آزاد نبودند. امروز هم نگران کسانیه که اسیر الکل، شهوت، پرخوری و اغده روانی و یا عادت‌ها و غیره هستن همونطور که خدا میخواست قوم اسرائیل از اصارت در مصر آزاد بشن، عیسی هم میخواد ببینه مردم در آزادی زندگی میکنن. عیسی میخواست اسیران را آزاد کنه. همونطور که از بیانیه او برمیاد او دائما در حال بینایی دادن به کوران، شفا به شکستگان و آزادی برای اسیران بوده شنوندگان عزیز آیا تا حالا آزاد شدید؟ آیا چشمان روحانی شما باز شده؟ آیا لنگی روحانی شما شفا یافته؟ اگر نه، امروز به حضور عیسی بیایید. اون میخواد به شما کمک کنه تا شما رو رها کنه تا آزاد بشید. دانشجوی عزیز، اگر آزاد شدید میتونید مثل اون چهار دوست باشید که نیازمندان رو به حضور عیسی بیارید. باشد که قدرت خدا بر شما قرار بگیره تا بتونید اون چه رو که خدا در زندگی شما انجام داده به دیگران شهادت بدید. لطفا ترتیبه بدید که در ادامه مطالعه انجیل لوقا با ما همراه باشید تا برنامه بعدی فیض و آرامش خدا بر شما و بر خانواده شما باد.